هر که با بدان نشیند، اگر نیز طبیعت ایشان در او اثر نکند، به طریقت ایشان متهم و گر به خراباتی رود به نماز کردن، منصوب شود به خمر خوردن. رقم برخود به نادانی کشیدی که نادان را به صحبت برگزیدی. طلب کردم ز دانایی یکی پند مرا فرمود با نادان ما که گر دانای دهری خرب باشی و گر نادانی ابلح تر باشی